شنوندگان خوب افسانه های صوتی از سری داستان های کتاب سیندرلا و کفش شیشهای و چهل افسانه دیگر با داستان دیگهی در خدمتتون هستند که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید اسم داستانمون هست شرق آفتاب قرب محتاب یکی بود یکی نبود مرد فقیری بود که با زن و چند بچهش زندگی میکردند. مرد هیچی نداشت که به بچه ها بده و اونها با کمترین غذا و لباس زندگی میکردند. همه ی بچه ها زیبا بودن ولی کوچیک در این دخترش از همه زیباتر بود. یه عصر پاییزی که هوا داشت کم کم تاریک میشد بارون تندیم میبارید و باد سختی میوزید. به طوری که دیوارهای کلبهشون میلرزید. افراد خانواده دور آتیش نشسته بودن و هر کسی مشغوله کاری بود. یهو کسی سه ضربه به شیشه پنجره زد. مرد رفت بیرون که ببینش کی هستش؟ دید خرس بزرگ و سفیدی پشت در ایستاده. خرس سفید گفت عصر شما به خیر، مرد گفت: به خیر خرس سفید گفت: دختر کوچیکت تو به من میدی؟ اگه دخترت رو به من بدی، هرچقدر که الان فقیر هستی، بعداً ثروتمند میشی. مرد که خیلی دوست داشت پولدار بشه، با خودش فکر کرد: ولی باید اول نظر دخترم رو بپرسم." بعد به داخل کلبه رفت و به بچه ها گفت: "خرس بزرگ و سفیدی، بیرون کلبه وایساده و میگه که میتونه ما رو ثروتمند کنه به شرطی که دختر کوچیک رو بهش بدیم. دختر گفت نه و به حرفای پدرش گوش نکرد. مردم بیرون رفت و به خرس گفت که بره و یه هفته دیگه بیاد و جوابشو بگیره. پدر درباره پولدار شدن و اینکه وضعشون چقدر تغییر میکنه خیلی برای دخترش صحبت کرد و بهش گفت که این کار برای خودشم خیلی خوبه. سرانجام دختر راضی شد. لباسهای کهنه‌اش رو شست و خودش رو مرتب کرد و آماده رفتن شد. اون چیز زیادی هم نداشت که با خودش ببره. عصر روزی که مرد قول داده بود، خرس اومد تا دختر رو با خودش ببره. دختر بخشش رو پشتش گذاشت و نشستش که خرس از راه رسید. دختر با خرس راهی شد. اونا مقدار زیادی راه رفتن. خرس سفید گفت میترسی؟ دخترک گفت نه نمیترسم. خرس گفت محکم پشت من بشین. هیچ اتفاقی نمیفته. خرس رفت و رفت تا به کوه بزرگی رسید. بعد زربه ای کوه شکافی تو دل کوه پیدا شد و اونها داخل شدم. در اونجا قلعه ای پر از اتاقهای درخشان و پرنور بود که از طلا و نقره ساخته شده بودن. تالار بزرگی هم اونجا بودش که یه میز بسیار با در وسطش بود. میز اونقدر زیبا و مجلل بود که نمیشه وصفش کرد. خرس سفید دخترک رو همونجا گذاشت و یک زنگ نقره‌ای بهش داد و گفت که هر وقت کاری داشت اون زنگ رو به صدا در بیاره. اگر چه که هر چیزی که بخواد همونجا هست؟ دخترک پس از اون که کمی غذا خورد خوابش گرفت چون تمام روز رو راه رفته بودم و خیلی خسته شده بود. اون زنگ رو به صدا در آورد. همین که دستش به زنگ خورد تخت بزرگ و راحتی پیدا شد زیباترین تختی که هر کسی دوست داشت روی اون بخوابه ها و ملافه ها و رو تختی همه ابریشمی با تزییناتی از طلا و نقره بود اصلا تمام وسایل اتاق از طلا و نقره درست شده بود وقتی دخترک چراغ رو خاموش کرد و برخت خواب رفت مردی اومد و در کنار تختش روی زمین خوابید. او هیچ وقت نتونست اون مرد رو ببینه. مرد فقط شبها که چراغ خاموش میکرد ظاهر میشد و قبل از اینکه که صبح بشه ناپدید میشد. تا مدتی همه چیز خوب پیش میرفت و اونها خوشحال بودن. اما بالاخره دخترک احساس ناراحتی میکرد. او مجبور بود که در تمام طول روز تنها بیرون بره. آرزو داشت که میتونست پیش پدر، مادر و خواهر برادراش برگرده. خرس سفید از دختر دلیل ناراحتیش رو پرسید. دخترک گفت که اون همیشه تنهاست و کوهستان براش دلگیره. ولی تو خونه پدرش خواهرها و برادرهاش کنارش بودن، و چون دیگه نمیتونه پیش اونها بره، خیلی غمگینه. خرس گفت این مشکل چاره داره. اگه به من قول بدی که تنهایی با مادرت صحبت نکنی و فقط در حضور دیگران باهاش حرف بزنی، کارها درست میشه. ولی ممکنه مادرت سعی کنه که تو رو به جای خلبتی ببره و تنهایی باهات حرف بزنه. ولی تو به هیچ وجه نباید این کار رو بکنی وگرنه خودتو من به بدبختی بزرگی دچار میشیم. بالاخره یه روز خرس سفید به دخترک گفت که آماده بشه تا اون رو میشه پدر مادرش ببره. دختر پشت خرس نشست و اونها سفرشون رو آغاز کردند. راه زیادی رفتن تا بالاخره به یک مزرعهی بزرگ رسیدن. خواهرها و برادرای دخترک در اطراف مزرعه میگشتند و بازی می‌کردند. مزرعه اونقدر قشنگ بود که همه از نگاه کردنش لذت می‌بردند. خرس سفید گفت: "الان پدر مادرت اینجا زندگی می‌کنن. نباید چیزی که بهت گفتم و فراموش کنی وگرنه هر دومون دوچار دردسر میشیم. دختر گفت: "باشه." حتما یادم نمیره. دختر به طرف مزرعه رفت و خرس تصمیم گرفت که به طرف خونش برگرده. وقتی دختر وارد جمع خانواده شد همگی از دیدنش خوشحال شدند که گویی هیچ وقت خوشحالیشون پایون نداره. همه ی افراد خانواده از کاری که دخترک براشون انجام داده بود ابراز خوشحالی کردند. حالا دیگه اونا هر چیزی که میخواستند داشتن و همه چیز در بهترین حالت ممکن بود. اونا از دختر پرسیدن که زندگیش چطوره و دختر گفت که اونم زندگی خوبی داره و هر چیزی که بخواد براش فراهمه. با همه حرفایی که دختر زد اونا چیز زیادی در مورد زندگی دختر نفهمیدن. بعد از ظهر وقتی نهار خوردن همه رفتم بخوابن. درست همون چیزی اتفاق افتاد که خیرس پیشبینی کرده بود. مادر میخواست که تو اتاق با دخترش تنها صحبت کنه. ولی دختر یاد حرفای خیرس افتاد و گفت که حرفی نداره که با اون بزنه. و بعد با ملایمت به مادرش گفت که حالا بعداً حرفامون رو میزنیم. من چیز خاصی ندارم که بگم. ولی مادر اونقدر اصرار کرد که بالاخره دختر مجبور شد همه داستان رو بگه. اون به مادرش گفت که چطوری هر شب مردی میاد و در اتاقش میخوابه. اما اون هیچ وقت نتونسته مرد رو ببینه چون اون بعد از خاموش شدن چراغ میاد و قبل از روشن شدن هوا میره. و اینکه در اونجا غمگین و مدام با خودش فکر میکنه که بین خانوادهش چقدر شاد بوده و اینکه تمام روزها مجبور تنها بیرون بره و خلاصه اینکه چقدر غمگین و دلتنگه مادرش با وحشت و گریه گفت آه عزیزم حتما مردی که شبها پایتختتو میخوابه یه موجود افسانه‌ایه ولی عیبی نداره خودم یه راهی بهت یاد میدم بتونی اونو ببینی چند تا از شمهای منو بردار و با خودت ببر اونا رو زیر لباس پنهون کن شب وقتی که اون خوابه شما رو روشن کن تا صورتش رو ببینی ولی باید کاملا مراقب باشی که عشقای شم رو روی اون نریزه دختر شما رو برداشت و در لباسش پنهون کرد و عصر اون روز خیرس سفید دنبالش اومد که با همدیگه دیگه برن وقتی کمی راه رفتن خیرس از دختر پرسید که آیا اتفاق خاصی نیفتادش پیشبینی های اون درست بوده یا نه اون به دختر گفت اگه تو کاری رو که مادرت خواسته انجام داده باشی برای من و خودت درد سر درست کردی دختر گفت نه من هیچ کاری نکردم اونا به خونه رسیدن وقتی که شب شد دختر رفت و خوابید و مثل هر شب معمول مردی اومد و کنار تختش خوابید. نیمه شب وقتی که دختر کاملا مطمئن شد که مرد خوابیده بلند شد و شمع رو روشن کرد و کنار صورت آن گرفت. دخترک دید که شاهزاده زیبایی اونجا خوابیده که چشماش بسته است. شاهزاده اونقدر زیبا بود که دختر میخواستون رو بهتر ببینه، برای همین سرش رو پایین برد. تو همین وقت چند قطره از عشق شم روی لباس شاساد ریخ و اون از خواب بیدار شد و گفت چیکار کردی؟ تو هر ما رو بیچاره کردی؟ اگه این کار رو نکرده بودی من میتونستم آزاد باشم. میدونی من یه نامادری دارم که منو تلس میکرده طوری که روزها خرس میشم و شبها به شکل یه آدم در میام ولی حالا با کاری که تو کردی من مجبورم تو را ترک کنم و پیش اون برگردم اون در قلعهای در شرق آفتاب و غرب محتاب زندگی میکنه در اونجا یک شاهزاده خانومم هست دماغ خیلی درازی داره حالا من باید برم و با اون ازدواج کنم دخترک واقعا غمگین شد و خیلی گریه زاری کرد بعد از پسر پرسید آیا میتونه که همراهش بره یا نه اما پسر نمیتونست اون رو ببره دخترک گفت باشه تو نشونی قلعه رو به من بده من بعد دنبالت میام و در اونجا بالاخره مرو راه میدن پسر گفت خوبه که تو بیای ولی اون قلعه جایی در شرق آفتاب و غرب محتابه و اصلا نمیتونی پیداش کنی صبح وقتی دخترک از خواب بیدار شد نه خبری از پسر بود و نه از قصر و قلعه اونم روی یه تیکه چوب کهنه در کنار علفها خوابیده بود و کنارش لباسهای کهنه بود که از خونه پدرش با خودشا برده بود. وقتی خواب از سرش پرید، فهمید که چه بلایی سرش اومده، از شدت ناراحتی شروع به گریه کرد. بعد بلند شد و راه افتاد. رفت و رفت. روزها گذشت و اون به کوه بزرگی رسید. پیر زنی در دامنه کوه نشسته بود که با یک سیب طلایی بازی می کرد. دختر جلو رفت و از پیرزن پرسید آیا پسری رو میشناسه که با نامادریش در غلعهی در شرق آفتاب و غرب محتاب زندگی میکنه و پسر بخواد با شاهزاده ازدواج کنه که دماغش خیلی بزرگه؟ پیرزن گفت تو این چیزها رو درباره اون از کجا میدونی؟ نکنه دنبال اون میگردی؟ دختر گفت بله میخوام اونو پیدا کنم. پیرزن گفت پس اون کسی که دنبال پسرک می گرده تو هستی به هر حال من چیزی درباره اونها نمیدونم و فقط میدونم که در شرق آفتاب و غرب محتاب زندگی میکنه. از اینجا تا اونجا هم خیلی راهه و تو باید راه زیادی رو طی کنی تازه اگه بتونی اونجا رو پیدا کنی تو میتونی اسب منو قرض بگیری و با اون پیش پیرزنی در کوه همسایه بری. شاید اون بتونه به تو کمک کنه. وقتی به اونجا رسیدی، از اسب پیاده شو. بعد ضربه‌ای به زیر گوش چپ اسب بزن تا خودش پیش من برگرده. راستی، این سیب طلایی رو هم با خودت ببر، شاید بهت کمک کنه. دخترک سوار اسب شد و رفت و رفت تا به کوهی رسید. پاین کوه پیرزنی نشسته بود که یه شونه طلایی تو دستش بود. دخترک ازش پرسید که آیا راه قلعه رو که در شرق آفتاب و غرب محتوه میدونه یا نه؟ اما اونم حرفای پیرزن قبلی رو بهش گفت. من چیزی درباره اونها نمیدونم. غیر از اینکه قلعشون در شرق آفتاب و غرب محتابه از اینجا تا اونجا هم راه زیادیه تازه اگه شانس بیاری و اونجا رو پیدا کنی ولی میتونی اسب من قرض بگیری و نزد پیرزنی بری که در نزدیکی من زندگی میکنه شاید اون بدونه که قلعه کجاست وقتی به اونجا رسیدی از اسب پیاده شو ای به زیر گوش چپ اسب بزن خودش برمیگرده. اونم شونه تلایی خودش رو به دخترک داد و گفت که شاید به دردش بخوره دخترک سوار اسب شد و دوباره راه زیادی رو رفت بعد به کوه بزرگی رسید که پیرزنی پایین کوه نشسته بود و داشت با یه چرخ طلایی بازی می کرد اون از پیرزنم پرسید که آیا شهزادهی ای رو که در ای در شرق آفتاب و غرب محتاب زندگی میکنه میشنسه یا نه؟ اما دوباره همون حرف ها پیش اومد پیرزن گفت تو دنبال شاهزاده میگردی؟ دختر گفت بله من دنبال اونم اما این پیرزنم چیز بیشتری از قبلیا نمیدونست و گفت تو مدت زیادی باید بری تازه اگه بتونی اونجا رو پیدا کنی من اسبم رو بهت قرض میدم اما بهتره به طرف باد شرق بری و از اون سوال کنی. شاید اون نشونی قلعه رو بدونه و به سمت اون بوزه و تو رو به اون قلعه برسونه. ولی وقتی به باد رسیدی زربه به زیر گوش چپ اسب من بزن تا خودش برگرده. بعد هم چرخ طلایی رو بهش داد و گفت شاید به دردت بخوره. دختر سوار بر اسب رفت و رفت روزها و روزها تورا بود تا به باد شرق رسید او از باد پرسید که آیا شاهزاده ای رو که در قلعه در شرق آفتاب و قرب مهتاب زندگی میکنه میشناسه یا نه باد شرق گفت من درباره این شاهزاده و قلعه چیزایی شنیدم ولی راه قلعه رو بلد نیستم چون هیچ وقت در مسافتی به این دوری نوزیدم ولی اگه بخوای میتونم تو رو نزد برادرم باد قرب ببرم ممکنه اون بدونه چون اون از من قوی تره پشت من بشین من تو رو پیش اون میبرم دختر پشت باد شرق نشست و اونها با سرعت هرچه تمامتر را افتادن وقتی به اون را رسیدن باد شرق داخل رفت و گفت که دختری رو آورده که دنبال شاهزاده میگرده که در ای در شرق آفتاب و غرب محتاب زندگی میکنه. حالا میخواد بدونه که باد غرب چیزی درباره اون پسر میدونه نشونیشو بلد هست یا نه؟ باد غرب گفت نه من تا به حال در مسافتی به این دوری نوزیدم ولی اگه بخوای تو رو نزد باد جنوب میبرم. اون از هر دوی ما قوی تره و تا مسافت های دوری وزیده. شاید اون بدونه. پشت من بشین تا تو رو به اونجا میبرم دختر پشت اون نشست و دوباره راهی طولانی رو طی کردن. وقتی به باد جنوب رسیدن باد غرب همه ای را رو برای شریف کرد. باد جنوب گفت آه این دختر دنبال شاهزاده می گرده. من راهای زیادی رو رفتم و دیدم ولی تا به حال جایی به این دوری نرفتم. اگه بخوای میتونم تو رو نزد برادرم یعنی باد شمال ببرم. اون از همه ما بزرگتر و قویتره و اگه اون ندونه این قلعه کجاست هیچ کس دیگه تو دنیا نمیدونه. پس پشت من بشیم که من تو رو نزدم میبرم. دختر بر پشت باد جنوب نشست و با عجله راه دادن اونا بالاخره به باد شمال رسیدن. باد شمال اونقدر وحشی و ترسناک بود که دخترک خیال کرد وارد گردباد شده و خیلی ترسید. باد شمال از مسافت دوری ناله کشید. چی می باد جنوب گفت من هستم برادر این دختر دنبال شاهزاده ای می میگرده که در قلعه در شرق آفتاب و غرب محتاب زندگی میکنه و حالا میخواد بدونه که تو نشونی این قلعه رو میدونی یا نه باد شمال گفت بله من یک بار یک برگ درخت سنوبر رو به اونجا بردم ولی اونقدر خسته شدم که تا چند روز دیگه نتونستم بوزم اگه تو واقعا میخوای به اونجا بری نباید از سوار شدم بر پشت من بترسی من میتونم تو رو به اونجا ببرم دختر گفت نه نمیترسم من باید حتما به اونجا برم هر قدم که تون بری من نمیترسم باد شمال گفت بسیار خوب ولی الان باید بخوابیم فردا صبح را میفتیم صبح روز بعد باد شمال به موقع از خواب بیدار شد و خودش رو به بزرگترین و قویترین شکلی که میتونست در آورد. اونها اونقدر بالا رفتن که نزدیک بود از آخر دنیا هم رد بشن. طوفانی به راه افتاد، طوفانی که به همه خونه ها و کشتی ها میوزید و همه چیز رو خراب و ویران میکرد. اونو از روی دریاهای زیادی رد شدند و همه چیز رو طوفانی کردند به همه خونه ها و کشتی ها وزیدن. زمان زیادی با شتاب گذشت تا اینکه باد شمال کم کم خسته شد و از اون همه وزیدن آروم تر شد هر چی میگذشت باد آروم تر می‌وزید و پایین تر اومد تا جایی که گاه گداری امواج دریا به پاهای دخترک میخورد. باد شمال گفت میترسی؟ دختر گفت نه نیمیترسم و واقعا هم نیمیترسید. راه زیادی نمونده بود تا اونها به خشکی برسن. باد شمال هنوز اونقدر قدرت داشت که اون رو به ساحل برسونه و بالاخره باد شمال دخترک رو درست زیر پنجره های یک قلعه که در شرق آفتاب و غرب محتاب قرار داشت گذاشت. اما خودش اونقدر خسته و ضعیف شده بود که تا چند روز نتونست به خونش برگرده. صبح روز بعد دخترک در کنار یکی از دیوارهای قلعه نشسته بود و داشت با سیب طلایی بازی میکرد. اولین کسی که دید دختری با دماغ دراز بود اون پنجره رو باز کرد و گفت دختر در عوض این سیب طلا چی میخواهی به تو بدم دختر جواب داد تو نمیتونی این سیب رو با پول و طلا بخری شاهزاد خانوک گفت اگه با پول و طلا نمیتونم بخرم پس با چه چیزی میتونم اونو بخرم هرچی رو که در عوض اون میخوای بگو دختر که با باد شمال اونجا اومده بود گفت اگه بگذاری امشب من به اتاق شاهزاده برم این سیب رو بهت میدم. شاهزاده خانون که تقریبا میدونست موضوع از چه قراره گفت باشه میتونی بری. شاهزاده سیب تلایی رو گرفت و دختر رو به اتاق شاهزاده فرستاد. در اون لحظه شاهزاده خواب بود. دختر بیچاره هرچی اون صدا زد و تکونش داد نتونست بیدارش کنه. وقتی که صبح شد، شاهزاده دماغ دراز اومد و اونو از اتاق بیرون کرد. تمام طول روز دختر دوباره رفت و زیر یکی از پنجره های نشست و شروع کرد به بازی کردن با شونه طلایی. دوباره همون ماجرای روز قبل اتفاق افتاد شاهزاده ای در ماق ازش پرسید که در عوض اون شونه چی میخواد و اون جواب داد که شونه فروشی نیست مگه اینکه بتونه یک شب رو در اتاق شاهزاده باشه. وقتی که شب شد اون به اتاق شاهزاده رفت اما باز هم خواب بود. دخترک هرچی اون صدا زد و تکونش داد از خواب بیدار نشد. انگاری که اصلا زنده نبوده. صبح شاهزاده دماغ دراز اومد و بازم اونو از اتاق بیرون کرد. دخترک بازم زیر یکی از پنجره های قلع نشست و شروع کرد به بازی کردن با چرخ طلا. دختر دماغ دراز باز هم از دخترک خواست که چرخ طلا رو بهش بده. دخترم همون حرف قبلی رو گفت و شاهزاده خانم هم قبول کرد. در نزدیکی اتاقی که شاهزاده در اون میخوابید مردم مهربونی زندگی میکردن. اونا متوجه شده بودند که دو شبه که دختری به دیدن شاهزاده میاد و بالای سر اون گریه زاری میکنه و این موضوع رو به شاهزاده گفتند. بنابراین اون روز عصر وقتی شاهزاده خانم با نوشیدنی خواب‌آورش به سراغ پسر رفت اون وانمود کرد که اون رو خورده ولی نوشیدنی رو از دهانش بیرون ریخته بود چون نمیخواست دوباره خوابش ببره. وقتی که شب شد دختر به اتاق شاهزاده رفت. اون بیدار بود. دختر براش تعریف کرد که چه سختی کشیده تا اونو پیدا کنه. شاهصاده گفت خیلی به موقع اومدی چون من فردا باید ازدواج کنم ولی واقعا نمیخوام با اون دختره دماغ دراز عروسی کنم و تو تنها کسی هستی که میتونی من نجات بدی من به اونها میگم که میخوام ببینم عروسم چه کار بلده و به اون پیشنهاد میکنم که لباسهای منو بشوره همون لباسی که قطره های شم روی اونه. این کاریه که اون قبول میکنه انجام بده ولی نمیتونه و این تو هستی که میتونی قطره های شم رو از روی لباس پاک کنی و هیچ کس نمیتونه این لباس رو بشوره به جز یکی از همون آدم های مهربون همسایه من چون مردم بر جنس ساکن قلعه نمیتونن این لکه رو پاک کنن من از این مسئله استفاده می و میگم فقط کسی میتونه همسر من بشه که بتونه این لباس رو تمیز کنه و مطمئنم که تو میتونی این کار انجام بدی اون شب هر دوی اونا از این فکر خوشحال بودند. روز بعد که روس عروسی شاهزاده بود، شاهزاده گفت من باید ببینم عروسم چه کارهایی بلده. نامادری گفت باش قبوله. شاهزاده گفت من لباس زیبایی دارم که میخوام اون رو برای عروسی بپوشم، اما سه قطره شم روی اون ریخته که باید شسته بشه. من تصمیم گرفتم فقط با زنی ازدواج کنم که بتونه این قطره ها رو پاک کنه. اگه کسی نتونه این کار رو کنه برای من مناسب نیست. اونا که فکر می این کار خیلی آسونیه پذیرفتن. شاهزاده دماغ دراز شروع کرد به تمیز کردن لباس ولی هرچی بیشتر می و میمالید انگار قطره های شم پررنگ تر می شدن. مادر دختر دماغ دراز گفت انگاهی تو اصلا نمیتونی اونو بشوری بده به من. اما اون هم مدت زیادی لباس رو نگه داشت چون دید که هرچی محکمتر میشه رو چنگ میزنه قطره های شم پررنگتر میشه. همه ساکنهای غلعه یکی یکی اومدن رو لباس رو شستن. اما لباس هرچی بیشتر شسته میشد قطره ها پررنگتر میشدن. تا جایی که سرانجام قطره های شم به سیاهی دوده بخاری شدم شاهزاده فریاد زد هیچ کدوم از شما به هیچ دردی نمیخورید. نگاه کنید دختر فقیری بیرون پنجره نشسته من فکر میکنم که اون بهتر از شما میتونه این کار رو بکنه بعد با صدای بلندی گفت آهای دختر بیا تو دختر به داخل قلعه رفت شاهزاده فریاد زد تو میتونی لباس رو تمیز کنی؟ دخترک گفت نمیدونم ولی سعی خودم رو میکنم. به محض اینکه دخترک لباس رو در دستش گرفت و به آب زد قطره های شم از بین رفتن و لباس سفید و سفید به تمیزی و پاکی آب شد. شخصات گفت من با تو ازدواج میکنم. مادر دختر دماغ دراز با شنیدن این حرف از عصبانیت در حال انفجار بود. دختر دماغ دراز و دخترهای دیگرم داشتن از قصه میترکیدند. شاهزاده سادو و عروسش همه مردم همسایه رو که در اونجا زندانی بودن آزاد کردند و هر چی تونستن طلا و نقره به اونها دادن. خودشون هم از ای که در شرق آفتاب و غرب محتاب بود رفتند. و تا میتونستن از اونجا دور شدن و زندگی شیرینی رو آغاز کردند. امیدوارم که از شنیدن داستانمون لذت برده باشین و منتظر داستانهای بعدی ما باشید. خدا نگهدارتون. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها